اعوذ بالله الزمیع العلیم من الشیطان اللعين الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام على نبی نا و تاخری عزیزان و خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض میکنیم ان الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید. انشاءالله الله که به لطف الهی و انایت الهی از هر گونه گزند و بلایی هم دور باشید. ما توی این درس خودمون، تو این درس خودمون سعی بکنیم که بقول خودمون بیشتر حجم توضیح و مطلب و بازی با لفظ و کلمات رو بیشتر کنیم که شما اون که از متن هستش رو همین داخل کلاس یاد بگیرید و بیاموزید و دیگه نیاز به این که مثل حضور که ما در کلاس خیلی سرعت بیشتری داشتیم اینجا یمقدار سرعتمون هم کمتره که شما راحتتر بتونید خودتون رو باهاش عیاق کنید و سعیمون هم زینه که تو این درس موارد بلاغی صرفی نحوی موارد اینچنینی رو با شما داشته باشیم که بتونید اون جنبه های خودتون که جنبه اصلی کار هم هست اونها رو یه مقداری به قول خودمون تقویت کنید اما متنمون نگاه کنید ما یه کتابی هست تو اینترنت هم هست میتونید پیدا کنید به اسم المجانی المجانی الحدیث المجانی الحدیث تو المجان الحدیث نوشته آیه افرام بستانی نوشته افرام بستانی فعاد افرام البستانی برشو. جلد سوم این این پنج جلده جلد سوم جلد این خ جلد سومش از صفحه دیویستو سه از صفحه دیویستو سه اشعار آقای متنبی رو نقل کرده اشعار آقای متنبی رو نقل کرده دیویستو تا و, و شیش. تا دویست و, و شیش سیاست صفحه اشعار متنبیه خب این متن بحث ما میشه حالا هرچه قدرشو من تونستم برای شما بخونم همون مقدار رو هم از امتحان شما خواهد بود یعنی فرض بفرمایید که صد بیت شعر خوندیم دیویس بیت شعر خوندیم ده بیت شعر خوندیم ارچقدر توضیح دادیم و خوندیم همونها امتحان شماست یعنی یکی از اون عبیات رو میدیم میگیم اشتر العبیاتت تالیه بیتای زیر شهر بده لغتشو جمله هاشو لغتشو معنا کن جمله شو معنا کن و ترجمه کن و بکن همه کار که خودمون کن شرف رو. پس بنامه این دیگه جایه هیچ گونه نگرانی هم نداره. پس کتاب المجانی الحدیث مال فعاد افرام البستانی پنجلیه میتونید دانلود کنید پنجلش رو جل سه از این صفحاتی که گفتیم حالا شما بر میدارید کپی میگیرید و پیش خودتون نگه میدارید و یکی یکی لغات رو ما بیان میکنیم و ای چرا متنبی رو انتخاب کردیم؟ باید البته تا اگه مثلا تو حضور بود ما حتی بیس سیتو سی تا سیت و رو می آوردیم از هر گدوم ده تا بید جزبه های متعدد و این کار رو میکردیم اون دفعه اومدیم متنبی رو بیان کردیم و روی یکیشون حالا به عنوان عباسی دوره عباسی شوهرهای اون دوره داریم کار میکنیم چرا چون متنبی سرامده یعنی متنبی معادل سعدی ما حالا چه سعدی نخواهد شد ولی خب سعدی عربیست خوب کسی اگر مسلط به شعر سعدی بشه مسلّت به شعر معاصلین سعدی که پایین تر از او بودن هم خواهد شد چون که صد آمد نوت هم پیش ماست وضع متنبیر انتخاب کردیم که بتونه در واقع کمک به این موضوع هم کرده باشه پس این هم درس مشخص شد هم جزوش مشخص شد هم حجمش مشخص شد هم امتحانش مشخص شد هیچ کنه جای نگرانی هم ضمن که باز متنبی رو انتخاب کردیم چون متنبی دیوانش شهرها مطالب و اینجور چیزها هم داره که میتونید اگر دلتون خواست از آنها هم استفاده کنید گرچه نیازی نیست چون من همه رو توضیح خب دیگه کار مشخص شد سفر تا مسیری که میخوایم حرکت کنیم معلوم شد پس بنابراین هیچ گونه دیگه جای نگرانی نیست حالا ما با توجه به اینکه شما ندارید من از همون قصیده اولش چند تا بیت رو میگم شما مینیویسید دیگه اینطوریه دیگه نویسید یه مقید با اون عبیات ما کار میکنیم تا انشالله شما جزور رو هفته آینده دیگه صد در صد در مقابل خودتون دارید و خیلی حضور خودتون رو دقت خودتون رو داشته باشید چون خیلی نکات صرفی نحوی بلاغی نکات ادبی اینجور چیزها رو من خواهم گفت که اینها کمک به شما میکنه که تقویت در دروس دیگرتون هم پیدا کنید و این بسیار بسیار چیز مناسب و خوبیه چون یکی از شیبه های آموزش آموزش درس که تو درس های دیگه به طور غیر مستقیم به همون مطالب به کار گرفته بشید یعنی ما در واقع یک انگاه کارگاه ادبی میخوایم برای شما داشته باشیم که بتونید این مباحث رو بید. زوغ شما هم تحریک بشه نسبت بسم الله الرحمن الرحیم بیت افر ا ام مؤفر مؤفر مؤفر دوشون مثل مغفق یا افر و تعفیر با این افر یا افر تعفیرن باب به تعفیر دیگه امو افرال لیس امو افرال امو افرال لیس معفر اللیس اله به صوتی صوت با سین و تای معلفه تای علفدار یعنی تای توتی پس مصره اول چی شد؟ اما برای لیس الهوزه الهزبر به سوطهی ادخرت اد ادخر یتدخر ادخارند لمن ادخرت لمن ادخرت اصار ما خسر ما بواسط اصال ما المسؤولة مسؤول وصاد وقاف المسؤولة امو افرال له زبر بسوتهی لمن دخلت سارم المسکولا امو افرال لیس له زبر بسوتهی لمن دخلت سارم المسکولا گفتی میشه در مده بدر ابن میشه در مدح بدر ابن پس اینجا هم داره خطاب میکنه به همین آقای بدر ابن میگه ا اح. اح همزه استفهامه. یعنی آیا چیز ببخشید همزه نداست یعنی ای معفر لیس منادای مضاف منصوب شد منادای مضاف میدونید که منصوبه دیگه مثل یا عبدالله اما اما خب. اثر لیس همزه ندا برای ندای غریب میاد یعنی انگار اون آقا نزدیکش بوده کنارش بوده در مقابل او براش معد کرده این شعر خونده گفته ای افرا افرا یو افرا تعفیرن خیلی متعدیه یا یو رو. افر زیدون امرن افر زیدون امرن یعنی مرقهو فتراب مرقهو با قید مرقهو فتراب یعنی تو خاک مالیدش پس افره یعنی چی؟ به خاک مالید اصلا اگر یه ظرفی رو خاکمال کنند که سابق خاک میمالیدن تمیز میکردن، به این عمل می تعفیر تأثیر یعنی خاک مالی کرد خب پس افرهو افرهو یعنی او رو به خاک مالید یعنی مرقهو واقید مرقهو فتراب میخوام لغت یاد بگیرید خب اما افرل یعنی چی میشه ترجمهش ای به خاک مالنده شیره درنده اللیس ای کسی که شیر درنده را به خاک میمالد ای به خاک مالندهی شیر درنده اللیس یعنی شیر درنده هزبر باز اسم شیره ولی معناش یعنی قوی قدرتمند این بوده حجبر این علیه زبر صفت لیسه چی شد درجمه تا اینجا؟ ای به خاک مالنده شیرژیان ای کسی که شیرژیان شیر قدرتمند رو به خاک می به خاک می اندازد با چی؟ به صوتهی این به صوتهی متعلقه به محفره صوت جمعش سیاد یعنی تازیانه شلق خب رو رو ترجمه شدیگه شد بلدی لغات شم فهمیدیم میشه چی؟ ای کسی که به خاک می اندازد شیر را با تازیانه خیش با شلاغ خیش ای کسی که با یک شلاغش شیر ژیان را از پادر میاره و به خاک میندازه حالا جواب ندا این مسره دومه، ای کسی که این طوریه. لمن ات دخرت از سار مل مسئولا لمن ات دخرت از ات دخرا یعنی زخیره کرد نگه داشت ات میگه ات دخرت زیدون مالند یعنی زید ذخیره کرده مال کنار گذاشته باقی گذاشته نگه داشته مال لمن این لمن من استفانی است متعلق به دخلت است برای چه کسی نگه داشته ای زخیره کرده ای از سارم از سارم علف داره تعریفه یعنی این سارم یعنی قد کننده اسم شمشیره یعنی این شمشیر قاطع برای چه کسی نگه داشته ای زخیره ای؟ این شمشیر قاطع و المسخول هم صفتشه مسقول یعنی سیغل شده او یعنی سیغلش کرد صافش کرد تمیزش کرد تیزش کرد <متحد> برای کی دیگه نگه داشتی؟ این شمشیر سیخل شده رو تو که با یه شلاغت شیری رو از پادر میاری دیگه شمشیر رو برای کی دیگه نگه داشتی اونم این شمشیر آخته سیخل شده تو شیر جیان رو با شلاق از با در آوردی و به خاک انداختی حالا چطور ما نمیدونیم برای کی نگه داشتی این شمشیر این شمشیر رو دیگه برای کی بستی این شمشیر دیگه اونم شمشیر آخت و سیغل شده برای چیست حالا توی داستان خواهیم گفت که شیری به این آقای بدر ابن عمار حمله کرده و این با شلاوی که در دست داشته زده و شیر رو به زمین انداخته همین بهانه شده متنبی گفته کسی که تو به خاک انداختی ای به خاک اندازنده شیر جیانه نه کسی که به خاک انداختی شیر جیان رو با شلاق خود پس برای کی نگه داشتی این شمشیر قاطع و سیغل شده این شمشیر دیگه برای چیه تو که با شلاغت شیر رو از خود میاری پس این شمشیر رو دیگه برای کی نگه داشتی خب دیگه اول رو اما افرال لیسله زبره بسوتهی لمنت دخرت از سارمال مسئولت دخرت از سارمال مسئولت یه کسی با این همه لغت و صرف و نحو و همه چیشو که گفتیم این بیت و امثال این رو نفت از سارمان مفعوله دخرت است همه صفتشه لمن هم جار و مجرور متعلق به اترخسته حالا چرا مقدم شده؟ چون استفخان بوده استفخان صدارت داره جمله لمن دخرته جواب نداست گفته آهای به شیر جیان باش الله خود برای چه کسی ذخیره کرد و نگه داشت ای این شمشیر آت و برلنده و سیغل شده را خب. اما اافا که گفتیم همس استفهامه و معافاً لیس منادای مضافه و منادای مزاف محصوط همزه ندام هم گفتیم برای ندای قریب میاد ندایی که منادا نزدیک مصرع دوم جواب نداد بریم بیت دوم یه اینو فهمید وقعت وقعت علال اردن وقعت علال اردن نه. علال اردن مثل همه اردنی که کشور می وقعت علال اردن نه من ها من ها بلیتون نوزدت نو زدت با زاد نوزدت به ها هام و رقاقه هام و رفاقه هام دو چشم به ها هام و هام و تلولا تلول، طلول با تید ناخته میخونم وقعت علل اردن من هو بلیتون نزدت به ها ها رفاقه طلولا رفاقه تلولا نزدد با زاد به ها ها مور و وقعت على اردن منه هو بلیتون نزدت به ها هام و طول طلولا اون وقعت فیل بلیتون فایلش بلیه جمعش بلایا تو فارسی خودمون هم هست وقعت که میدونید دیگه یعنی واقع شد و حقوق شما استفاده میکن علن اردن اردن اسم منطقه است. او که هم داشته جنگی اونجا اتفاق افتاده وقعت علل اردن منهو منهو متعلق به وقعت علل اردن هم متعلق به وقعت ولیتون ولیتون گفتیم فائل وقعت گایی اوقات که آورد... آورده میشه نکره دلالت بر تعظیم میکنه اینجا از اون موارده نگاه کنید واقع شده است در این منطقه از این شمشیر بلایی عزیم بلای عظیمی از این بهپاخاسته در این جنگ کولاک کرده نزدد نزده یعنی چید چید یعنی چید منظور یعنی که ردیف کرد مرتب کرد از آن منزود ادور المنزود یعنی زیورالات و گوهرهایی که ردیف شده ها یعنی از صقر سه نقطه یعنی دندان از سقر منزود یعنی دندان های مرتب بدون اینکه پسو پیشو تشکیل بشه نوزدب چیده شده ردیف شده به ها به واسطه این بلا او؟ ها هامر رجال ها, ها هام جَم هام است. جَم هامه. هامتون یعنی کاسه سر یعنی سر. این قسمت گوش به بالا ها از این بنا گوش به بالا بهش میگن هام کاسه سر هامه. هامت الرجل یعنی کاسه سرش. ولی خب اینجا منظور کل سره درست شد حام و رفاق هام یعنی رعوس میشه اینجا سرها جمع هام است ار جمع, رفق جمع رفقه است جمع ار به یعنی گروهی از مردم گروهی از مردم جمعش میشه رفاق هامور رفاق ما رفاق رو تو فارسی هم با استفاده میکنیم. رفاق اصلش به گروه از مردم میگه که با هم هم سفره رفقه رفاق افرادیند یعنی که با هم هم سفره. اینجا منظور یعنی جماعات رجال یعنی لشکر هامور رفاق طلولند طلول جمع تله کل یعنی تبه نوش حالا یک دقیقه ای رو بهتون فرصت میدم با توجه به این که ترکیب هم کردن به رو الان جمله نزدت صفت بلیتونه اون هام و رفاق نایب فایلش. اون به ها ها به بلیه رابط جمله صفت جمله صفت رابط مخاطر زمین این رابطش برمی به بلیه این طلولن هم حاله یعنی چیده شده در این بلا در این واقع سرهای جماعات سرهای نشگریان دشمن در حالی که به شکل تپه‌ای است حالا یه یک دقیقه باهم که همه چی رو براتون معنا کردن بهتون فرصت میدم که دقت بکنید روی عبارتش بتونید یه فهمی نسبت بهش داشته باشید ما چقدر راحت الان وقتی که کلمات و عبارت رو فهمیدیم ما میتونیم این رو بفهمیمش یه نگاه کنیم Thank <laughs> you. بله معنای بیت رو ده بار دیگر هم بخوایید خواهم گفت مردم یه ذر شما فکر کنید روش فرست شد مؤثرن ليس له زبر بصوته من من دخرت صار مالمسولا وقعت على الاردن من هبليه تن زدت بها امر رفاقه طولا فشرت نزدتم گفتیم یعنی چی جمع شده بعضیش کنار هم دیگه چیده شده کنار هم دیگه به طور مرتب ها هم که گفتیم جمع ها یعنی اینجا به معنای البته سر ولی اصلش گفتیم از این جسمات بناگوش به بالا چون با شمشیر که میزنن چی میزنن بهترین نوع زدن با شمشیر اینه که گردنه بزنی سر به دیگه طرف صد در درصد از پا در میاد میگه سرها رو به شکل تلهایی درآورد. آمود دوستون هم که گفتیم جمع تله یعنی همشکل با تل یعنی در حالی که تله است در حالی که تله است. درستون جمع تله تل. تل تپه اردن هم که گفتیم اصلش اسم نهری بوده نهر اردن که الان هم همین اون منطقهی ای که این نهر درش واقع شده ها. اسمشو اردن. یعنی اردن و شیرها معمولا کنار نهرها شکار میکنن یعنی شکار خودشون رو انجام میدن خلص شد حالا نگاه کنید نگاه کنید وقعت علل اردن منخو منخو زمیرش الان توی عبارت بالا دو تا چیز هستش که میتونه مجای زمیر باشه یکی صوت یکی لیس حتی تا یکی هم شمشیر م. یعنی واقع شده بر مردم کنار این نهر در این منطقه علل اردن، بر این منطقه واقع شده بلا یزیم این بلا ازیم از کی واقع شده؟ از کی سر زده؟ اگه بخوره به لیس میشه از اون شیره بخوره به صوت میشه از شلاق تو بخوره به شمشیره که از سالمالمسغول میشه از شمشیر تو بلای عظیم به پا خواسته بود مصیبت بزرگی ولییهم گفتیم نکره اس دلالت بعد تعظیم میکن آه؟ یعنی بلای خانمانسوزی واقع شده بود بر این مردمان کنار این نهر الاردن منهو از اون حالا اون کیه؟ یعنی اون شیر اون شلاق اون شوشیر بلایی که چیده شده بود جمع شده بود کنار هم به واسطه اون بلا به سبب اون بلا سرهای رفقا سرهای همراهان به های در حالی که مثل تبه بود طلولا گفتیم حال است از برای حام و رجب از برای هام حال از برای سرهای اینها در حالی که تلهایی بود خب این منحورو میخواییم به که به کدوم یکی از اینا؟ دقت کنیم میره میخوره به اون شیر اون الیس این منهو میگه این شیری که تو زدی با نمیخوره به شلاق نمیخوره به شمشیر میگه این شیری که تو با شلاقت زدی و به خاک انداختی این مصیبتی بود بر این مردمان مصیبتی بر اون با... از او واقع شده بود بر این مردم ها. که سرهای این همراهان رفاق جمع رفقه است، یعنی افرادی که میان کاروانیان اونا جماعتی که میرفتن که این افرادی که از اونجا کنار این نهر رد میشدن اونها میامدن از این نهر آب بردارن از اینها. سرهای اینها اونجا مثل تپههایی ریخته بود میدنید اینها رو پا. پس چی با گفت این شیری که تو با تازیانه خودت به خاک انداختی ها این مصیبتی بر این مردمان بود که سرهای اینها از مصیبت او به شکل تپههایی بگید واقع شده یعنی اینها رو شکار کرده بود هر گروه اینجا می آمد توسط این شیر قلع و غم می شد سرهای اینها مثل تپه تپاهای اینجا ریخته بود جمجمه سرهای اینها تو این شیر رو با یک شلاغ بر زمین انداخت درست شد پس وقعت علل اردن گفتیم اردن چیه؟ نهر آبی بوده که خوب شیرها کنار اون شکار میکنند و کاروانیان هم میان از همون جا آب بردارن و غیره شکار میشن. مثلا حیوانات دیگه هم میان از نهر آب بخورن شیر اون رو شکار میکنند شکارگاه شیر معمولاً کنار نهر واقع شده بود برای این منطقه منهو از این شیر بلایی از این مصیبتی بزرگ مصیبتی که ردیف شده بود به واسطه اون مصیبت چیده شده بود به واسطه اون مصیبت سرهای جماعاتی که می آمدند کاروانیا ردیف شده بود به شکل تلهایی به شکل تپه‌های تپه‌هایی از جمجمه رو اونجا میدیدید این شیر انقدر از این مردمان شکار کرده بود که تپه‌هایی از جمجمه‌های اونها دفاع کرده بود تو با یک شلاق اونو به خاک بروش تو با یک شلاق اون رو به کار اند به خاک خب اینم بیت دوم دیگه. دیگه کامل معنا کردیم اما اثر الیس زبر به صوتی نه من دخرت صار مالمسولا مبالغه داره میکنه دیگه وقعت علال اردن نمنه و بدیتون نزدت به ها هام و رفاقه طلون داخت بیت سوام وردون وردون ازا ورد البحیرته بردون ازاوردن به حیرت شاربن مرادر در فراته مرادر در فراته مصر به معنی شه زعیر با ذ ر ای و همزه وارد الفرات زعیره و النيل بندي لا و نيل ا نيل رود نيل مثال فرات که اسم رود وردم اذا وردل بهيرت شاربن شاربًا ولد الفرات ذئيره و نیلا. این بیت رو تو کتاب البلاغه الواضحه خوندید وردون اضافه در بحيره شاربن تو بحث علم بیان تو موضوع استعاره استعاره مسلحه طبیعی اونجا خوندیم و توضیح هم ما نرد یعنی سرخ اما اسم شیرم هست شیر سرخ شیر سرخ نمیشه آیا حالت بور رنگی داره که شیرهای نر اونطوری یعنی یال هاشو ها. به این دلیل بهش میگن به این شیر نره قدرتمندی که یال های تحویی خودش رو داره بهش میگن ورده این وردان داره همون شیره رو میگه که بلای عظیمی شده بوده سرها رو به شکل تقبه های. کنار اون نهر رو انداخته بوده ها میگه وردانی وردان یعنی هوه وردان خبر مبتدا محظوفه. یعنی اون شیر سرخی بود او شیر سرخی بود وردون این جمله اذا ورد البحیرت شاربن ورد فرات زیره و نیلا این جمله شرطیه نهل شد جواب شد این جمله صفت اون ورده جمله بعد از نکره میشه سفت. صفت او شیر سرخیست شیر سرخی بود که ورد البحیرت البحیره جمع بهره چیه مسقر بحر یعنی دریا بحیره میشه دریاچه منظور دریاچه طبریه است که توی همون پایین نهر اردن در شام واقع شده سوریه واقع. شد میگه می او شیر است که هنگامی که ورد البحیرته وارد میشه به آن دریاچه ورد یعنی وارد دریاچه شد آب بخورد ورد البحیرته شاربند شاربند حال است از فرائل ورده آب نوشاند در حالی که میخواد آب بنوشد همه یه حیوانات حالا بعدن راز بقا نگاه کنید همه حیوانات از اون گنجش گرفته تا فیل تا شیر همه اینها وقتی تشنه هستند حرکت میکنند تا به آب برسند وقتی به نهر آب میرسند به دریاچه میرسند که آب داره چشمشون با آب که میفته شروع میکنند به صدا کردن. صدا میکنه اون گنجش چیک چیک چیک میکنه شیر میگرده کلا قاروار میکنه هر کدام به تشنگی که دارند آب رو پیدا میکنند میرسند این صفت ازشون این شیر هم که میاد مخواد وارد این دریا چشه و آب بخوره از دور یک قرشی میکنه میگه موقعی که وارد دریاچه تبریه میشه و میقره برای این موقعی که میاد آب بخوره ورد الفرات ونیله یعنی ونیلا ات بجای میگه قرش میکنه کنار این دریاچه که وارد میشه گرهش او ذعیر ذعیر یعنی قریدن زعره یعنی قرید زعره زاره می نویسید بالای الف یه همزه میذارید زعره یعنی شیر قرید زعر الاسد یعنی شیر قرید میگه وارد میشه به رود فرات و رود نیل غنش کردن او صدای او کنار این دوتا رود شدیده موشه کرد. میگه وقتی باخر میدونید که سوریه این دریاچه تبریهش مثل دریاچه ارومیه ایما دریاچه مالندی این وسط عراق و مصر رو شده. اراق سمت راستشه مصر اون طرف سمت چپ بعد از فلستیناشغالی میگه این وقتی وارد این دریاچه میشه یک پرش عظیمی میکنه که در سمت راستش رود فراد کسانی اگه باشند صدای اونو میشنوند و در سمت چپشم کنار رود نیل اگر کسی باشه صدای اونو میشنون یک قردش عظیمی می میکنه و موقعی که میاد به این شیره تور این شیری بود همه کاروانیان رو از سرهاشون تباهایی درست کرده بود توی این چنین شیری رو خو با یک شلاق از پا دره بود. به خاک انداخت وردن اون ورد به حیرت فعل شد ورد الفراته جزای شرط این جمله شرط و جواب رو هم صفت وردن و وردون هم خبر مبتدای محصول یعنی هاز الاسد یعنی هو وردون ازا هم که میدونید دیگه عدات شرط یعنی هنگامی که اضافه میشه به جمله شرطه یعنی برادر حیر با حیرت اشاره جمله مصافنه میشه مال هر کجا بیاد خودش مفعول فی زمانه ظرف مفعول فی منصوب برای جزای شرطه یعنی خودش متعلق به برادر فاهیه است که فهمیدین میگه اون شیری بود شیر سرخی بود که هنگامی که وارد و دریاته تبریه میشد آب نوشان در حالی که آب بنوشه وارد میشد قرش کردن او بر رود فرات و رود نید یعنی کسانی که اونجا بودن صدای او رو میشنید یعنی وقتی که وارد میشد تا در یاجویه تبریغه رو مردم عراق و مصر میشنیدند جناس قشنگی بین وردون و ورده هستم ها ورد یعنی سرخ یعنی اینجا شیر سرخ اما ورده یعنی وارد شد ها او بزد وردن ورد حیرت تشاربا ورد ردل فرا و می خب این اوله دیید اصلا سخت نیست خیلی راحته و ما داریم بازی میکنیم با این عبیات انشالله اگر شما جزور داشته باشید دیگه نوشتنتون خیلی کمه با ذهنتون این کلمات و مطالب رو یاد می بریم سر بیت چهارم متخذ زبان متخز زبان متخز زبان متخز زبان به دمل فوارسه خذاب که شنیدید دیگه با بازاد یعنی خودشو خذاب کرده رنگین بود رنگین ساخته بود خبر مطبع یعنی قوم متخذبه به دمل فوارس این سرخ شدنش و خذاب شدنش میگه به خاطر خون لشکریان بوده فوارس فوارس جمع فارسه یعنی سوار متخاز به دم فوارسی لابسون فی قیلهی اون طرف مسیح. فی قیل با قیل باقین لابسون فی قیلهی من لب دتاییه من لب دتاییه من بخونم متخذ بند به دم الفوارس لابسون سی قیلهی من لبدتیه قیلا قیل با في قیل. سی من لبدتیه قیلا قیل حتما میدونید القیل یعنی القابه یعنی جنگل یعنی العجمه جنگل قیل القابه لبده که اینجا لبدتای تصمیه شده لبدتای بوده اضافه شده ده. نبده یعنی یال یال این شیر اگر دیده باشی شیرهای نر دو طرف سرشون انگار از وسط فرق باز که این دو طرفش سمت راست و چپ ریخته موهای اینا یالند یالهای شیره دوتا انگار فرق باز کرده از سرش یه قسمت سرش یه قسمت اون سرش. سرش رو داخل این موهای بلند یالها ها نگه داشته لذا گفته دو یال او دو, دو طرف دیگه چپ راست که این یالها روی کتفای سمت چپ و راستش ریفته. متخززبان یعنی متلط که یعنی آغشته شد تخززب یعنی خذاب شد، تخه یعنی آغشته کرد تلط تخه زیدون به دم یعنی آلوده به خون شد خون به شد یعنی خذاب کرد، شد. خذاب شده پس زبان تخز زده یعنی خذاب شده متخز زبان خبر مبتدا محصول داره یعنی قوه متخز زبان یعنی آزل اسد این شیر متخذ زبان خذاب شده به دمل فوارس با خون لشکریان سواران م? یعنی میگه شما نبینید این یال هاش سرخ و قهوهی سیر و این ها این خدا دادی. نه این خون کشته شده هایست. این خونه که خذاب کرده خودش رو مثل کسی که میشه بلندی داره و اون رو با هنه خذاب میکنی یه خذاب کرده او خذاب کرده هست با خون سواران یعنی شکارهایی که کرده مردمانی رو که از پادران لابسون خبر دوبه پوشیده فیقیلهی در جنگل خودش ما این جنگل این بیشهی ای که کنار این رود هست جنگلی که توش زندگی میکنه چون شیر در بیشه زندگی میکرده پوشیده است در جنگل خودش مل لب از دویال خودش قیلن یک جنگل دیگری سهل قشنگ میگه انگار این شیره تو دو تا جنگله یه جنگل یالشه آه. که دور تا دور اونو پوشون یه جنگل بالای اینه که اون درختانیه که این رو در خودشون داره. پوشیده از در جنگل خودش این جنگل اون جنگل واقعیه که توشه پوشیده در این جنگل از دو یال خودش جنگلی دیگر یعنی انگار اون جنگل یه جنگل با درختان بالای سرشه پایین از اون یه جنگل دیگه هست که منظور از این جنگل دوم اون یالشه که دو طرف این رو پوشونده. انگار این شیر در دو لایه از جنگل واقع شد یه لایه یال های است یه لایه هم اون است که بالای سر اوست چه این باشه این گفته پس چی شد خوبه متخذ بود او خذاب شده رنگین شده به دم الفوارس با خون سواران سوارانی که شکار کرده خون اونها باعث شده این شیر سرف شیر سرف لابسون پوشیده فیقی رهی در جنگل خود من لبتتی از دو یال خودش از یال هایی که دو طرف بدن خودش هست پوشیده است در این جنگل جنگلی دیگر قیلند این قیلند مفعول لابسونه این فیقی به من متعلق به لابسونه به دم الفوارس به متفض متقض و لابسان دو دوتا خبرند برای مفتقه محذوف یعنی هوبند. مثل اون وردان که خبر بود حرف دارون شیر و معنام. میگه این شیر خون شکارهای او او رو خذاب کرده بود و این شیر پوشیده بود از یالهای خودش جنگلی رو داخل اون جنگلی که داشت دنگی میکرد یعنی مبالغه کردی که این یالها اینقدر زیاد بود که خودش مثل یه جنگل این شیر رو در خودش گرفته بود خب بشنگ بریم سر بیت بعدی این بیت رو هم باز توی کتاب البلاغة و الوازهه ما گوبلت عیلهو الا زنتا تحت دو نار الفریقه بلونم تو بحث اغراض تشبیه این رو بیان کن ما قوبلت عیناه ما قوبلت عیناه قابل مشغولش میشه قوبلت سیر شارونش میشه قوبلت ما قوبلت اللاهو الا الا زنتا زنتا بازای محلطه از زن و گمان الا زنتا مثلای دوبون تحتت دو جا دو جا دو جی می نمیسید دو جا خونده می خدا خودا تحتت دو جا نار الفریق نار الفریق نار الفریق هلولا هلولا هلول حالا میخواد اون شیر ژیان رو بگه در شب چه حیعتی داره شیر از گربه سانانه گربه سانان از این گربه خونگی نمید گربههایی که میشناسید تا اون شیر بزرگه درنده چهل نوع گربه سان هست پلنگ و یوز پلنگ و جگوار و شیر و گربه وحشی و همه جزء گربه سانانه. این گربه یه خصوصیتی داره اونم اینه که تو شب تو شب چشمشون برق میزنه تو شب چشمونها برق میزنه خوب یعنی شما اگر تو شب یه شیری رو ببینید شب تاریک جسم اونو چیزی نمیبینید چی میبینید فقط دوتا چشم میبینید که مثل چراغ قوه داره نورد همین دوتا نقطه رو میبینید روشن حالا میگه این شیر که مردمان رو می و تو با یه نشوندیش. این شیر توی تاریکی شب اگر کسی دوتا چشم این رو فکر می آتش کاروانیه که یک نقطه دوردست دست اطلاق کرده قدیم کاروان تو بیابون میرفتن. خب یه جایی که شب می‌شد دیگه نمیترستن برند اونجا اتراغ میکردن وقتی اتراغ میکردند، دو تا آتش روشن میکردن با فاصله یا آتش مردان و با قول خودمون کاروانیان اون افرادش دورش جمع میشدن یا آتش هم خدمه و زنان و این افرادی که تدارکات این کاروان رو میکرد. اگر کسی از دور نگاه میکرد به جز اون آتش چیزی نمیدید چون دیگه برای یه تاریک بود دیده نمیشد دیگه فقط از دور دوتا نقطه روشن میدید که آتش کاروان بود حالا گرفتید؟ میگه این شیر رو تو تاریکی اگر این کاروان اطراخ کرده باشه آتیش روشن کرده باشه مردم اون زمان زیاد دیده بودن چون مسافرت میکردن شبم سفرهاشون بود اطراخ هم میکردن از دور هم کاروانی که اطراخ کرده دیده بودن لذا میگه چی؟ میگه ما قوبلت عینا رو در روی نشده با دوچشم این شیر این عینا ها نایفایل با دوتا چشم این شیر رو در روی نشده ملاقات نشده مقابله نشده الا زنت ها این زنت ها حال است از برای جوده حال است از برای عیناهو مگر در حالی که گمان شدهاند این دوتا چشم رو در روی نشده با این دوتا چشم مگر در حالی که گمان شدهاند، نار الفریق مفعول دوم زنت است. چون مفعول اولش علف شده نایب فاره مگر در حالی که گمان شدند این دو چشم آتش الفریق فریق یعنی کاروان مگر گمان شدند آتش کاروان آتش کاروان کجا؟ تحت دو جا تحت یعنی سیر دوجاج جمع دوجیه است دوجا جمع دوجیه یعنی تاریکی ظلمت مگر اینکه گمان شدند آتش یک کاروان در تاریکی ها در سیاهی ها تاریکی ها حلولن حلولن ظرف زمانه یعنی وقت حلولن حلول یعنی اطراق حلل یعنی نزله حلولن یعنی نزولن وقت اطراق این وقتی که کاروان بارشو گذاشته زمین اطراق کرد حلولن یعنی وقت حلولن تحت دجا و حلولن یعنی وقت حلولن ظرفن برای زنتات یکی زرف مکانه یعنی در تاریکی ها در اون فضای تاریک یکی هم بلولن یعنی در اون وقت نسل پس چی شد ترجمه راحت شد ما و رو بلد در نشده است. عینا این دو چشم شیر خور به حسد. مگر در حالی که گمان شده این دوتا چشم آتش. در تاریکی های بیابان به هنگام اترق حلولت به هنگام اترق و اقامت خب؟ یعنی چی؟ یعنی اگر کسی شب ایشی رو ببینه جسمشو که نیمینه چشماشو که ببینه اصلا باور نمیکنه کنه شیره اینقدر می انقدر اینقدر روشنه چشمان بزرگ نورانی فکر میکنه دوتا کاروان آتشه که تو بیابون اون دوردست دست روشن کردن ما قوبلت ایناهو الا اینا زنه شد مقابله نشده با این دوتا چشمشی مگر در حالی که گمان شدند در تاریکی های بیابان به هنگام اتراق گمان شدند این دوتا چشم آتش کارم ما بود لد اینا های لازن تا تحت دو جا نارن فریقه امروز پنج تا بیت رو برای شما گفتم دیگه با خودمون مقاملی بیت را یا مقداری ارفاق کرده باشم نیدید که خیلی آروم هم خونده میشه لغات، عبارات، مطالب گفته میشه و شما هم شعر رو درکش میکنید یعنی دیگه این نیست که فقط شعر رو بخونی ترجمه تحت و لفظی هم زیرش داشته باشید نه شعر رو میفهمید سر میکنیم اینشالله براحث من با همینطوری با هم داشته باشیم شما هم جزرتونی برای هفته آینده همین ساعتی که هست تهیه میکنید و ما در خدمت شما هستیم هیچ جای نگرانی هم ندروت دیگر خواندن چمپیچر و یادگیری و مقاط و مطالبی که هست چیز سختی نیست و مخصوصاً که ما بیش از حد هم تکرار میکنیم که این تکرار باعث بشه که شما همین در حضور و کلاسی که هستید کاملاً مطالب رو یاد گرفته باشید بنابراین اساتتون خواهش میکنن هیچ گونه استرسی نداشته باشی خیالتون تخت باشه توی این شرایط به خدا توکل کنید و کاملا مطمئن باشید و استرس و استرام هم نداشته باشید که خدای نکرده بیمار نشید. حالتونو به خدای سبحان میسپارن، موفق و باشید. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و